رسیدیم به آیه پنجا هشت الان که رسیدم به این حدود از بحث تفسیری با اون که بحثای خودمون هستش یک پشیمانی برام پیدا شد اینکه که چرا اول ترم نگفتم که یک تفسیر مختصری رو به عنوان متم درسی داشته باشید چون مثل, مثل تفسیر جلالی. که در واقع با یه تفسیر کوچکی هم دنبال کنم درسته که همه مطالب رو من میگن بله خلاصه این مبحث بود متاشت جرس کردم تفسیر جلالی، به تفسیر لغت و غیره که یه مقدار زحمت نوشتن شما رو حداقل یه مقداری کمتر میکرد با یه تفسیرم هم میخوندی همیشه این کارو میکردن این دوره احساس کردم یه مقدار سرعتم بیشتر بشه که بتونم این سرعت رو آنجایی که میشه بیشتر بخونم ولی به قول خودمون مسکی خیلی تغییرم نکرد چون وقتی که میرسه من بیشتر صحبت می کنم خب بسم الله الرحمن الرحیم قل ارعایتوم ما انزل الله لكم من رزقین فجعلتم منهو حرامن و حلالن قل ا الله از عین الکم الله تف ترون تف ترون قل از ار تا تف ترون قول قوله مفعول ماده بگید قول مفعول مادهیه بگید قل یه عبارتی دارد نگاه کنید قل اره ایتوم بعد دوباره قل اعله دقت کردید چی از کرده ها هم. یعنی قل دوباره بگید تکرار شده این قل در واقع تکرار این قل اوله یعنی جدید بگید نیست مثل اینکه که میگه بگو داره مطلب رو میگه بعد میگه بگو این یعنی برای پیوند این مغوله به قول معروف طولانیه یعنی در واقع اینطوریه ارعایتو ما انزل الله لکم من رزقین و جلتون من ها حرامن و الله اعله ازن لکم ام علالله تفترون اون اعله در واقع مفعول این ارعایتومه خبر بده اینو اون قول تکراره دقت کردید چی هست کردم یا نه مثل آیات دیگر که داشتیم چون میشه که گای اینو بهش میگن برای با قول خودمون طول فصل اصطلاح ادبیش میگن برای طول چی چی؟ فصل مثل سوره یوسف دیدید رب یا ابتا. اون بهتر یا عبتا اینی رعی تو احده اشره کوکبن و شمسه و القمره چی؟ رعی هم لی ساجدین این رعی هم در واقع تکرار اون اون لی ساجدین محبول دوم اون رعی اوله برای خاطر این که پیوند پیدا کند این چی شده بگید تکرار شده اینه بشه برای طول فصل یکی از موارد اتنابه برای پیمنده عبارت یا توی این آیه قرآن ایعه دوکم بنویسید بنوستید این رو که دیگه راحت بدونید ایعه دوکم انکم ازامتتم ازامتتم و کنتم ترابند و ازامن انکم مخرجون انکم مخرجون ایا ایدو کم چی بود انکم ازامتتون و کنتون ترابن و ازامن انکم بگو مخرجون الان ایا ایدو کم یعیدوی حووتو شه خب؟ کم مفعوله اولشه اگر ایدو اون بگید مفعوله دومشه اون کم انکم خبرش کو ایه ایدو کم انکم. مخرجون آخره دقت کردید نه اون ازامتون و کنتون ترابن و ازامن مسط اومده کار کرده بگید فاصله کرده ها؟ برای خاطر اینکه معلوم بشه اون مخرجون خبر اون انکم اوله انکم برابار بار دوم چی شده بگید تکرار شده دقیقاً چی شد یا نه هیچ غرض معنوی تو این عبارت بگید نیست پیوند نگرفتی چی چی شد یا نه ها میگه ایه دوکم آیا این رسول وعده میکنه به شما که انکم مخرجون که شما مبعوث میشی که اضامتتم و کنتم ترابن و ازامن. مشخص اینم من برای خاطر همین گفتم از اون ارعایتم تا تفترون همه مقول قوله بگید اوله و اون قول بگید تکرار اون قول بگید تکرار را به معنای اخبرونی اخبرونی ما انزل الله لكم من رزق ما ما استفهامیه باشه به معنای عیش این, این در واقع شد یعنی چی؟ اخبرونی خبر بدید به من ایش این انزل الله لكم این جمله ایش این انزل الله لکم مفعول ارعایتومه جملهش شد تا اینجا معلومه؟ و من من رزقن من من رزقن بیان است برای ما انزلالله الله ما عیشی ان انزل الله لکم من رزقن فجعلتم جلد به بجنزل است فجعلتم منه حراما و حلالا درسته؟ شد؟ فجعل تو منهو منهو میخوره به چی؟ یعنی معنظر الله یعنی رزق حلالن و حرام خب؟ شما برداشتید دید بعضی کردید حلال بعضی کردید حرام تا اینجاش معلوم شد؟ بگو فرق نمی اون منرزقه بیانه کی بود؟ ما بود درست شد؟ برگرده به ما بهتر به اصل دو تا یک میگه عایشه این انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا درستو فجعلتم منه حلالا و حراما این در واقع به این شکلها یعنی فجعلتم منه یعنی بعض او حلالم و بعض او بگیر حرامم شما بعضش کردید حرام. یعنی چیزهایی به خدا رزم نازل کرده شما آمدید نشستید یک سریشو حلال کردید یک سریشو حرام برای خودتون تشریع بگیر احکام کردید تا اینجا معلومه تشریعه احکام کردید حالا سوال اینه اعلاهو بپرس ازشون الله یعنی الله ازن لکن. آیا خدا ازن داده به شما در چه چیز بگید در این حلول رو حروم کردم خدا بهتون گفته بود من رز بهتون میدم شما برید اینو بگید خودتون حلال حرومش کنید رزق حلاله اینا آمدن یعنی اون چه که خدا رزق شما کرده حلال بوده شما خود آمده اید احکام جعل کردید بعضیشو حلال کردید بعضیشو بگید حرام کردید خدا بهتون اسم داده ام الله تفترون یا شما دارید بر خدا بگید افترا کنید کدومشه مشخص ام علاللاه تفترون یعنی تو کذبون دارد تکذیب میکنید خدا همچین چیزی بگید نگفته شد این جمله اخبرونی این ارعایتوم که اون ما انزلالله درست شد این در واقع این ارعایتوم این اعلاله ازنه هم مفعول شد نیست خبر بدید اعلاله ازنه ام بگید علاللاه تفتلون خدا اذن داده یا شما داری دروغ میبندید نگاه کنید الله بار دوم تکرار شده یعنی اینطوری بوده ا الله ازن بعد میفرمود ام علیه بگید تفترون چون مهم هست افترایی که دارن می‌بندن به کی دارن می‌بندن به خدا اسم ظاهر آمده بگید همزه استفان هست. همزه همزه استفان بگید. احسن یعنی خدای عظیم و شن رو دارید بهش دروغ میگید خدا بهتونین ازنو اجازه رو داده که شما این کارو بکنید یا ام علاللاه پس معلوم میشه که خدا توی حلال و حرام کردن بعضی چیزها ممکن است بگید اذن دهد رسول خدا اگر تشریعی کند به اذن بگید الهی است میگه شما رسول خدایی دارید حلال و حرام درست میکنید یا نه از بنابراین اگر کسی از طرف خدا معزون باشد آه؟ در فهم حلال و حرام و در بیان حلال و حرام این معزون است با یک سری موانی که بهش دادن یک سری به قول خودمون اجازهی که بهش دادن داره در بگید احکام الابی کشف حکم میکنه این. اما اگر اون مبانی و ارزن نباشد میشه چی چی بگید حرام میشه تکسیب تفترون ام علالله تفترون بعضی گفتن این ام ام متصله است اکثرا اما ام و متصله میدونن یعنی شما یا باید انتخاب کنید الله ها از یا بگید انتخاب کنید علاللاه تفترو چون اذن ندارید پس فناوری میشه علاللاه تفتر بعضیا گفتن نه اولیش استفهامه اع الله ازن الکوم یعنی خدا به شما اذنی نه آیا خدا بهتون اجازه داده یعنی نداده بعد امر رو به معنای چی گرفتن منقطع به معنای بل بگو خدا که بهتون اجازه نداده پس بنابر این شما دارید به خداوند بگید دروغ میگید بل یا ام قطعه به معنای بل است و همزه دیگه 90 درصد یا به معنی بل خالص یعنی بل عطف ترون الله یا بل تفترون علی الله ولی متصل گرفتن بهتر است خب از این آیه استنباط این مطلب میشه که شما ممکن است بگید از طرف خداوند مثل رسول خدا که از طرف خدا معزون است در بیان حلال و حرام ازن داشته باشه و همچنین کسانی که رسول خدا اونها را بگید در کشف حلال و حرام بگید به ما معرفی کرده دفتش معناش یکی میشه معناش یکی میشه میگه ام که باشه میشه یا اگه متصله باشه یعنی شما انتخاب کنید یا بگید ازن داریم یا بگید افترا میبندیم یکی از این دوتا خب معلومه از ندارن پس برن بگید افترا می‌بندن. اما متصله اما منقطعه باشه اول میگه آیا شما ازن دارید از طرف خدا استفهامش استفهام انکاریه یعنی ازنی بگید ندارید بعد میگه ام خدا که از ندارن چی میشه؟ میشه بلکه بگو علالله تفترون بلکه دارید به خدا دروغ میبندید و ما زنن لزین ترون الله. حالا پس معلوم شد که اینا دارن افترا میبندن دیگه گو شما عزم دارید گفتن نه معلوم بود ندارم پس فرغنی دارید چیه افترا می‌بندید میگه و ما ظن اللذین یفترون علی الله الكذب و یوم القیامه ان الله لزو فضل علی الناس ولا کن اکثرهم لا یشکرن و ما ظن میگه چی گمان می‌کنند چه فکری میکنن؟, چی فکر میکنن؟ م? چه فکر میکنه؟ <تصفيق> <تصفيق> الین یفتون الله نگفته و ما زنن تم با چون؟, چون بالا خطاب بود دیگه قول اتون ما انزل الله و لکن اینجا بعد میخوا و ما زنن شما بگید حالا چی فکر میکنید شما مفتری ها آه. این قفش بیشتره علال میگه ما زنن لزین یفترون الله باز علالله الله الله تکرار. این که دارن به خدا دروغ میبندن چی فکر میکنن ما زنن لزین یفترون و الکذب الکذب الفلام داره دروغ میبندن به خدا این دروغو کدوم دروغو؟ نه نه دروغ حلال و حرامی جل حکم جل احکام که از طرف خدا دارن بگی برا مردم حلال و حرام درست میکنن مازن نلزین ایفترون یعنی آه. چی فکر میکنن اینها اونایی که دارن برای خدا بگه جعل میکنن حلالو حرام ما زننالذین یافتارون علی الله الكذب یوم الغیامه این یوم القیامه متعلق به کیه متعلق به کیه نه نه نه متعلق به یافتارون نیست یافتارون در روز ها زن نست یعنی اینا روز قیامت چه فکری میکنن خواهند کرد؟ چه خاکی به سرشون میکنن روز قیامت؟ آه ما زنل لزینه ما زنل لذینه من میگم ما زنه. این ما خبر مقدمه ما خبر مقدمه این وظیفه سینافی است یعنی برنابری ما زنو لزینه نگفته ما زنو کن ما زنو لزینه یفترون علالله هلکزه. کسانی که این دروغ رو میبندن چی فکر میکنن پس ما شد خبر مقدم زنو شد مبتلای معخر اضافه شده به علزینه فایلش یفترون علالله هلکزه سله علزینه یا اومن قیامه متعلق به زن متعلق به زندنو یعنی چی فکر میکنن این کسانی که افتراه بر خدا میبندن روز قیامت اینا چه خواهی به چه خواهند کرد اینها در روز بگو قیامت این مفترون در روز قیامت بگید چه خواهند کرد یعنی ایوش این زنل المفترین ایوش این زن نول مفترین فیزال کلیوم در اون روز زن این ها چیه؟ این خیلی تهدید تو شها یا یه تهدیده؟ گفته خودتون حالا که شما اینجا افترابستید به خدا و فکر کردید خیلی آسونه فکر میکنید روز قیامت چیکارتون کارتون میکنن؟ گرفتی چی شده؟ آیه چی میگه؟ نه؟ یعنی ما یسنعو بکن یومل قیامت چی میشه با شما روز قیامت؟ یومل جزا تهدید بسیار عظیمیه تهدیدش اگر گفتی در کجا در اومده؟ دا... احضر ابحام ات تهدید و الازیم و یخ رجومنل ابحام گذر فکر میکنی چیکارتون کارتون کنی فکر میکنی روز قیامت با این غلطی که کردید بگید شما رو چه میکنیم یعنی اصلا به ذهنتونم هم شاید نرسه گرفتی چی شده ایبحامش دلالت بر تفقیم از این داره یکی از معانی استفهام تعظیمه مثل و ما ادراک ما لیلت القدر استفهام بذاشته الغاره تو ملغاره استفهام دلاله اینجا ما زنن لذینه فکر میکنی چیکارتون کنن کنن اللذینه یفترونه الله این التفاتش هم توش توبیخ اینها بیشتر هست که گفته ما زن یا یوم القیامه بعد گفته نگاه کنید ان الله لزو فضل ال الناس همه مردم راه رو نبسته یه تهدید کرده بعد گفته ان الله لزو با ان خدا خیلی فضل و لطف داره اینالله ان الله لزو فزنن ال ال ناس و فضله. یعنی شما لط خدا رو تو این دنیا ببینید دارید نون خدا رو میخورید به خدا دروغ هم میبندید. خدا راه رو هم برا بازگشتتون؟ نبسته. ان الله باز الله رو تکرار کرده ان الله لظو چون اینا باور نمیکردن دیگه با ان الام تاکید کرد. ان اللهظو فضل ال میگه بچه اگر خدا زو از بر مردم پس مردم چی میگه ولاکن اکثرهم لا یشکر ولی اکثر مردم شکر نمیکنن شکر یعنی چی یعنی فضل این فضل خدا رو بگی به جا استفاده نمیکنه این فضل خدا رو نمیگیرن این لطف و در رحمت خدا که در اینجا باز است بروشون اینو متوجه بگید نمیشه شد معلوم خب پس بنابراین از این آیات یه چیز به دست میاد اینکه خداوند تعالی بگید اختیار ممکن است بدهد ها اختیار خاص اختیار عام به اینکه بعضی احکام او رو کشف کنن حلال و حرام و اگر بدون ازن چنین کنن افتراه است و تهدید از این مهلاهی شامل آدشون و ما زنن لذین و ما زنن لذین یفترونه الله الکذب الفلام بسته یعنی الفلام الافلام یعنی این دروغ دروغه حلال و حرام درست کردن احکام جلع حکم یوم القیامه ولی با آخرش گفته ان الله لزو خداتون این دنیا صاحب فصل خیلی بهتون لطف داره حواستونو جمع کنید شک به این لطف رو بکنید تمام ولی روز قیامت چنین نیست روز قیامت مو رو از ماست خواهیم کشید تمامش آیه بعد رو ببینید و ما تکون و فی شأنم ما مایی نافی است خطابم به رسول خداست خطاب عام بگید نیست ما تکون و فی شأنم شأن یعنی امر یعنی قص ما تکون و فی میشه چیم تو در کاری نیستی یعنی کاری نیست که بکنی ما تکون و ما تکون و فی شانن. و ما تطلو منهو منهو ها میخوره به شم منهو ها میخوره به شم چون تلاوت قرآن هم یکی از بگید شهن هاست یکی از کار بلکه یکی از بالاترین کارهای رسول خداست خب. اگر بگیم میخوره به شن میشه مرجع ذمیر چی بگید ذکری یعنی ذکر شده اونها شن بعضی گفتن می‌خوره به تنزیل یعنی و ما من تنزیل من قران آه. مشغل شد اون میشه معنوی مرجع زمین از سیاه فهمیده بشه ما به طرفش فعلا نمیدیم پد چی شد گو ما تکونو فی شعن تو در شعنی نیستی دستی نیستی و ما تطلو من هومن درست شد و ما تطلو من قرآن این من من قرآنن منش من زائد است من زائده شرایطش چیه قبلش نفی باشه که ما تتلو هست مدخولش بگی نکره باشه که قرآنن یعنی مقروء یعنی کتاب نکره است درستو معلوم بعد فائل یا مفعول یا مبتدا باشه که اینجا بگید مفعول چون؟ یعنی و ما تطلوع منه قرآنن تو کاری نمی کنی و تلاوت هم نمی کنی از این شعن و وظیفه خودت قرآنی را ولا تعملون من عملن گوش ولا تعملون من عمل و هیچ بگی عملی رو انجام نمیدن این من عملن منش واس چیه من زاید است یعنی ما ولا تعملون عملا الا كن عليكم شهودا گوشدید الا کنا علیکم شهودا علیکم متعلق به شهودن نا اسم کناست شهودن خبرش تا اینجای کار داشته باش نگاه کنید میگه تو هیچ کاری نمیگه تو که پیغمبر مایی گل سرسبد خلقتی حتی بگید قرآن هم تلاوت نمی و هیچ عملی را شما انجام نمی دهید شما مسلمونا اینجا دیگه نفرمود ولا تعمل و من عمل درست شد همه ولا تعملون به پیغمبر و مؤمنین خطابه درست شد ولا تعملون من عمل یعنی عملن الا کن نا شهود همه زیر زر ببینید. درست شده نه پیغمبر هیچ قصدی نمی کنی. حتی قرآن بر اینها تلاوت نمی کنی. و اینها هیچ عملی انجام نمی مگر کننا علیکم شهید شمه. این کننا علیکم حاله جمله، جمله بعد از الله می شه حاله. مگر در حالی که ما داریم شما رو زیر زر بگید در حساب کتاب. باید. یعنی هرچ کاری کنید بگید زر زربی عجیب آیه شو درست شو آه. بله آه. لا... واوه لا تعملون لا تعملون عملا الا کننا علیکم شهودا اون کم هم رابطه جمله حال زلان. و و است از ذوال شد ولا تعملون من عمل الا كننا عليكم شو عجب پس و بس وما تكون في شنه وما تتلو منهم ما نافیه است ولا تعملون من عمل الا كن عليكم از توفیزون فیه و اذ تفيزون فيه وما يعذب ان ربك من مسقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب اینجا رو خوب دقت کنید یه مقدار از در ادبی پیچ داره پس ولات عملون یعنی چی؟ یعنی انتم جمعیان شهودن یعنی چی؟ یعنی عالمین به شما آهدی فل عمل یعنی چی؟ اینو تو سوره نور هم با هم دیگه خوندیم فل عمل یعنی فرو رفت تو کار قرد شد درست شد؟ یا اونجا گفتیم در داستان افک درست؟ فل عمله از اندف دفاع اونجا گفت یعنی بردرش لذتش یا ازابو یا یعنی یاقیبو یاقیبو قیب قیب شدن پنهان شدن پس ما یا ما یا یعنی چی یعنی ما یاقیبو ما یا بو هم نمیشه دور بگید نمیشه عذب از همین کلام است یعنی دور است از ازدواج ازدواجش پنهان نیست ان علم ربک پس چی گفت دقت کنید از تو بیزو نفیه فیه به کی میخوره دیه به عمل می خوره ها از نفیه و ما يعذب عن ربك من ميزقال ذرت یعنی ولا تعملون من عمد الا كن نا عليكم شهودا اذ تفيزون فيه ما بر شما شاهدیم، مسلطین آ دوربین های ما شما رو میگیره کی؟ ز توفیزو نفی، اون موقعی که وارد میشه اون کار فرو میریید همون موقعی که دارید عمل میکنید از ازظ متعلبه چی شد ؟شهودن. ما شاهدیم بر شما که از فیزو نفی همون موقعی که دارید وارد کار میشه آ یه موقع هست آخه یه کسی؟ کار آدم رو بعد از انجام میبینه آه. میگه نه همون موقعی که هست ما بگید داریم شما رو بگید زیر زر بین خودمون داریم از فیزونه فی یعنی نه. از اینجا به معنی چیه بگید نه. توفیزون فی مضافنه ده از از متعلق است به شهودن همون موقعی که شما غرق میشید در کار ما داریم شما رو بگید زیر نظر خودمون داریم بعد نگاه کنید و ما يعذبوا نگاه کنید ما تكونو في شنه یه جمله و ما تتلو منه من قران جمله دوم عذب شده ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا استفيزون فی جمله سوم درسته؟ به شدن این اینا دیگه. بعد و ما يعذب ان ربك من مسقال ذرهن في الارض. این من من مسقال زائد است. درست؟ مسقال ذره فائل يعذب است. ما يعذب یعنی چی؟ ما یعزب و یعزب و یعنی ما یقیب و ما یبؤت دور نمیمونه غیب نمیشه پنهان نمیشه ان ربک یعنی ان علم ربک ان شهود ربک که شهودن رو داشت درست از علم الهی از شهود الهی پاک نمیشه غیب نمیشه پنهان نمیمونه چی مسقال و فل اون مسقال و فایل یعز و گصر. من منت منه است برای تحکیم یک مسقال زرلی فلعرز این فلعرز چه نخشی داره؟ مسقال و زرتن این فرعز صفت زرست همه آتفه است این جملات به همه عطف داره میشه همه فعل مزارن با حرف نفی و ما یعذب و علم ربک مسقال و زردتن فعل عرض این فعل عرض واسه چی آورده قیدشو. برای تأکیده یعنی این کره زمین به این بزرگی کوچکترین چیز که زرد است اون هم بگو از شهود و چشم الهی دور نمیشه مثل و ما منداب پتین فل عرض الله این فل عرض میخواد بگه هر کجا این زمین باشه الا علی الله بگید و از قبل تأکید پس بنومنی یه سر سوزن این مسقال یعنی سیقلم مسقال یعنی سیقلم سنجینی یه ذره یه نوک سوزن دور نمیماند بله دور نمی ماند. هر کجای زمین باشد بگید از علم الهی از شهود الهی ولاف سما ولاف سما این ولاف سما اتفاست به جای فل عرض تا اینجاش معلوم شد الارز و از سما بگید الافلام داره یعنی مجموع هستی. یک سر سوزن چیزی باشد موجود باشه صقل داشته باشه ها عدم نباشه وجود داشته باشه از علم الهی دور بگو نمی‌مونه فلارض ولا فسمان یعنی الفلام اگر منظور همین آسمان و زمین باشه یعنی در این عالمی که شما توشید آه بنیم الفلام عهد میشه یعنی این آسمان و زمین اما اگر الفلام جنس باشه میشه سماوات و اراضین که بهتر است یعنی چی یعنی در کل هستی متوجه شدی چون ما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم ممکنه منظور همین زمین و آسمان باشه میگه پس بنابراین به اندازه یه ذره هم عمل شما در این آسمان و زمین که شما بالای سرتون و زیر پاتونه باشه از بین نمیره خدا میره هر دوش درسته نداره. ما داریم کجا زندگی می‌کنیم؟ روی این زمین آسمان هم بالای سر ماست عهده. تو این دنیا تو این دنیا عشنگه. تو این دنیا اگر یک اگر یک سر سوزن عملی وجود داشته باشد خداوند اون را بگید در شهود خودش دارد و از او پنهان نیست لذا الافلام الافلام عهد باشد و عهده بگید ذهنی هم باشد یعنی همین دنیا و همین زمین و آسمان ما شفایت کار اینجا میکنه دیگه نیازه به تعمیمش نیست ولی اگر الافلام جنس گرفتی تعمیم پیدایه کل هستی کدوم؟ اون واقع استینافه او وی این چهار تا جمله به هم ز شد. ولا استما. حالا دقت کنید اینو. این این ولا از ق که ولا اکبر علافی کتاب مبین اینجا وابشواب استینافی است. وابشواقع استینافی است. ببینید گفتش یک زرله خلاصه زرله اندازه داره دیگه حتی عات باشه بگید زره حتی الان به اتم میگن دیگه اتم باشد باز اندازه داره. یعنی زده هر چیزی که جسم است هر چیزی که وجود دارد اندازه داره. این خلاصه ابتدا انتها داره. میگه ما ذرن که برای شما مثال زدیم حالا زره اون زمان میخواد اون گرد و خاکی باشه که در نور دیده میشه یا اتم باشه یا ذره مورچه ریز باشه هر چی میگه نه اینکه که فکر کنی که حالا ذره گفتیم مگه از ذره کوچکتر باشه خدا این زیق لفظه کچیکتر از این بزرگتر از این هر چه باشد در نزده خداوند تعالی در لوح محفوظ بگید ثبت است این ولا اسقره یعنی ولا شیئا اسقره من زالک زالک یعنی چی؟ مسقال ذره چیزی کوچکتر از این مسقال ذره ولا شیئا بگید اکبر منزالک و چیزی بزرگتر از این ذره هر چی که میخواد باشه باشه این زیغ لفظ بوده مثل اون ولا تقال ما اف دیگه کمتر از اف نمیشده بگی ما که ذره گفتیم برای حد نیست اندازه نیست کچکتر از این بزرگتر از این هر چیزی که باشد چیز باشد الا فی کتابن موبی. این لا اسقره اسقره لا اون اسقره اسم لاست متوجهید؟ لا یه نفیه بگید جنس اسمش فی کتابن بگید خبرش موبیل صفت کتاب این جمله استیناف بیانیه نه؟ این جمله استینافه بگو بیانیه استینافه بیانیه یعنی چی؟ یعنی میگه که شما گفتید هیچی از چشم خدا دور نمیمونه چطور؟ میگه زیرا چه کوچکتر چه بزرگتر در لوح محفوظ الهی بگید ثبت است ثبت است الا فی کتاب ممیم. نمیشه ببینید خوب در نمیاد که شما اسقره رو عطف کنید به جای چی بگید به جای مسقال گوش میکنیده نه عطف کنید به جای مسقال بگید که اینطور میشه ما یعذب و انربکه مسقال من مسقال زرطن فرعز ولا اسقر من زالک ولا اکبر الا فی کتابن ببین معنا نداره گوش چی میخوام بگم آخو بعضیا ها کار کردن این ولا اصقر ولا اکبر را عطف کردن به جای چی؟ مسخال اصلاف. ما استیناب گرفتیم و معنا درست شد یه جمله جدا ولی اگر عطف بگیرید معناش چی میشه؟ میشه پنهان نمیمانه از علم پروردگاره مسخال زره در هستی و نه و کوچکتر از آن و بزرگتر از آن مگر در کتاب مبین یعنی پنهان نمیماند مگر در کتاب مبین استثنایی معنا میشه دقت یا نه گرفتید نه میگه پنهان نمیمونه مسخال ذره کمتر از اون بالاتر از اون مگر در کتاب مبین یعنی ما از نظر استسایه در صورت که این ولا اصخر یعنی این ولا فسما اینجا وای میستیم بعد این واو واو استینافیه میشه چی میشه؟ میگه هیچ چیزی ولا مسخال ذره باشد از دید خدا پنهان نمیماند انگار میگه چطور؟ میگه چون کمتر از اون و بیشتر از اون رو خداوند در کتاب مبین خودش چیه؟ لوح محفوظش سب بعضی زور زدن که بیان این اسقر و اکبر رو عطف کنن به جایه بگو مسخال زرگه با اون الافی کتاب مبین درستش کنن که از نظر ساختاری از نظر لفظی ضعیف میشه ما ارز کردیم که لا یهمل و تنزیل و علا ضعیف خب حالا اینو بعضیا خوندن گوش گوشکننی ولا ه بعض یا خوندن ولا قرار. اگر بخونیم ولا اس قراره میشه لای نفیه جنس مثل لا حوله ولا غته لابدلهه که تو نح می اگر خوندید لا حولا ولا غته میشه لایه بگو نفیه جنس. اگر خوندی ولا قرار ولا اکبرو ولا اکبرو که حط میشه بشه اصقر اون موقع لا اصقر رو یا با الاشو لای مشبهتون بلیسه بگیرید یا ملغا یعنی اصقر میشه مبتدار یا بگیرید لایه بگیرید مشبهتون بلیسه که عمل نمیکنه اون موقع چرا عمل نمیکنه لا لای مشبهتون چون بعدش الا اومده نشد یا شد پس اگه خوندیم لا اصغرا میشه لا لایه نفیه جنس اکبرم متروجه اگر خوندیم لا اصغر و لا اکبر دو تا ترکیب داره یک لا رو ملغا میگیریم ها حرف نفیه اصغر و اکبر میشن مبتدا که این خوبه یا لا و لا مشبعاتون بگید بلیسه میگیریم و باز عمل بگید نمیکنه چرا عمل نمیکنه بهلای که نفی‌اش به واسطه الا بگید شکسته شد. نفیش به واسطه الا شکسته شد. خب تمام شد. پس گفتش ببین این تیکه خیلی جالبه با آیات قبلا. آیات قبل رو شما چی فکر میکنید وقتی قیامت بشه؟ بعد خطاب میکنه به پیامبر و مؤمنی ها؟ زیرا کمترین عمل هم بگید سخت میشه و هیچ چیزی از چشم خداوند دور نمیم این که پیامبر رو و مؤمنین رو با هم جمع کرده فرموده ما تکون و فیشنن و ما تطلومن هومن قرآنن بعد فرموده ولا تعملون همین عملن چون اون کار کار اختصاصی پیغمبره تلاوت قرآن و امر بعد میگه ولا عملون من عملن الله کنو علیکم شهودن ما بر شما شاهدیم که حين تفیزو فی همون موقعی که دارین کارو داخلش میشید بعد میگه و ما یعذبو ان ربک یعنی ان علم ربک ان شهود ربک غیب نمیشه پنهان نمیشه از شهود پروردگار تو مسقال و زرلتن فل عز و لا فسمان یک کمترین چیز در این عالم هستی هیچ بعد میفرماید چرا؟ چون میگه هیچ چیزی کوچکتر از این مسقال زرل یا بزرگتر از این مسقال زرل نیست فقط باشه، شی باشه، شی آن اسکاره منزاله، شی آن اکبره منزاله. برای خدا کوچک و بزرگ معنا نداره، هرچه وجود دارد و عدم نیست در کتاب مبین بگیر پس حساف کتاب هست. الان این نه حالا ببین خیلی سخت شده اگر رو باشه که مزماست بشن، اگر قرار باشه که لا اسخرم من زالک و لا اکبر الا کتاب المبین اگر قرار باشه که لا تعملون من عمل الا کنوا علیکم شهودا استفیزو نفی اگر اینقدر شرایط بگید مو از ماس کشیدن باشه سخته لزو خدا چی جواب میده استینو عل این ان الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ولی اولیاء الهی فرماندهشون سفیده اینها نه خوف دارن بگید و نه حزن هیچ نه خوفی در اینها هست و نه حزنی ان اولیاء الله اولیاء الله اسمن است لا خوف علیهم ها خوفان مبتدا علیه خبرش این لا عمل نمیکنه اینجا چرا عمل نمیکنه چون تکرار شده دقیق میکنه ولا هم بگید یحزنون وقتی تکرار شد یه عمل نمیکنه میگه ولا هم یهزنون هم مبتدا یحزنون بگید ببینید جالبه نگاه کنید گوش کنید گوش کنید خوف خوف یعنی چی؟ ترس این لا نفیش میکنه نکره در سیاق نفی میشه چی افاده <تصفيق> یعنی یک ذره اینا ترس تو وجودشون ترس ندارن ها چون مؤمن در پیشگاه الهی ترسی نداره فرنده سفید ترس نداره اونجا تازه وجوه اینا مستبشره است زاهک و ازشون هم خوب بعد ممکنه ترس نباشه ولی حزن باشه آه. قصه باشه غم باشه نسبت به آنچه انجام نداده نسبت به آنچه بگو اتفاق خواهد میگه ولا هم یهزنون اینا حزن نداره خب هیچ ترسی بر اینها نیست این هم که مبتدا شده بعد یهزنون خبر دقت میکنید یا نه یهزنون فیل مزاره اومده خبر شده مفید چیه؟ حسره یعنی اینها فقط روز قیامت بگید حوز ندارن بقیه محزونند ولا هم یهزنون فیل مزاره آورده در طول دورانی که اینها در پیشگاه الهی باشن اینها هیچ گونه حوزنی برشون نیست هم یهزنون فعل مزاره استمرار می و از طرف دیگر این حسر ازش فهمیده بشه که اینها محضون نیستند پس بقیه چی هستن؟ بگید من. اینها کی که محزون نیستن؟ اولیاء الله اولیاء الله فقط محضون نیستن بقیه بگید دارای حوزند اولیاء الله حضنی بله خبر این نست و همم هم رابطش خیلی رشنگ ها این جمله ارتباطشو با جمله قب فهمیدید؟ جمله قب و مور از ماست میکشیم میگه بکشن بکشن هیچ مشکلی نداره آدم مومن میگن اون چه که است ها هیچ منتی برش نیست ها روسیایی بر زغال میمونه اینا تلان اولیا الله پس بنابراین اینا هیش خوفی بگید ندارم تا سیه شود هر که در اون باشد مومن که قش نداره اولیه الله پس برای اینا روز شادیشونه روز حزنشون نیست اینها روز اشبازیشونه روز خوفشون نیست اینها دارن به معشوق خودشون که خداوند تعالیست نزدیک میشن پس برای اونها ندارن اعلی نن الله لا خوف کُن و هم یحزنن مبتداش یحزنون خبرشه درست شد این هم رو بهش میگن فاعل معنوی درست شد متوجه واسه چی اومده به این شکل شده گفتیم برای خاطر اینکه افاده حاصل کنه یعنی حزن نداشتن مال ایناست بقیه دارای حزنن درست شو؟ خود خوفو میشه اسم <تصفح> چی دیگه نه دیگه عمل وقتی نمیکنه خوف میشه مبتدا علیه هم میشه خبر خاصه دو تا جمله اسمیه به هم عطف شدن دیگه یعنی الان دو تا جمله اسمیه به هم عطف شدن یکی خوفون علیه هم. یکی هم یحنون هر دو هم منفیه درست شو؟ هر دو هم منفیه و و ولی اون دومی رو نفرموده لا خوف علیهم ولا حزن علیهم گفته ولا هم یحزنون اینا هیچ غمی ندارن دیگران دارای به گو کدوم بله دو تا جمله به هم عطف شد دو تا جمله به هم عطف شد بله دو تا جمله به هم شد کدوم اون هم, هم رابط جمله خبر است به اسم نه مبتدار برمی به اولیا دیگه نه اولیا الله فس برمانی خدا بشی سعی کنید اولیا الله بشی اگر اولیا الله شدید مورم از ماسک کشن مشکلی برای شما نیست درسته اگر اولیاء الله بودید هیچ کن مشکلی نیست. لا خوفان عليهم و هم یعنی حالا علذینه آمن و و کانو انگار نفر میگه اولیاء الله کیان؟ میگه اینها دور نیستن کیان اولیاء الله علذینه یعنی همه علذینه خبر مبتدی محسو ف اونای این که باور دینی دارن اعتقاد دارن چون اصل پذیرش عمل به چیه بگید اصل پذیرش عمل به ایمانه پس آمنون رو دارن خب الازین آمنون و کانویت تقون کانویت تقون مازیه بگید استمراریه و همیشه از خدا می ترسند چون تو این دنیا از خدا ترسیدند متقی بودن اون دنیا بگید ترسی ندارن حزنیم نه. این دنیا کشتند و اون دنیا بگید دروم میکنند پس اللذینه شد چی؟ خبر مقتده بگید محضوف خمال لذینه خمال لذینه آمن و کار خیلی قشنگه ها یعنی آمن چیکار کرد گوه اولیه الله شوید تا خوف و حزن نداشته باشید ولو مور از ماست بکشند ولو لا از قرم انزاله که ولا اکبر الا فی کتاب مبین باشه ولو ما یعظب و انوب بکم انمسخال زرلتن فل عرض ولا فی سما باشه هرچی مخواد باشه باشه اون روز مؤمنین در پیشگاه الهی یا یومت طبیز و وجوهنه بعد هم عنوان کرد که حالا این کیان این آدم ها؟ اینا کیان هن؟ ای الله کیان که اون روز هیچ مشکلی ندارن؟ خب اینا از کره ماه نیومدن به قول خودمون اینا همین الازین آمنو هستن و کارو یدتامون اونا یکی حرف گوش کردن تو این دنیا بعد میفرماید لهم البش را میگه خب اینا نمیترسن حضنم ندارن چی میشه روز قیامت براشون؟ میگه لهم البشرا فل حیات دنیا و فل آخره خیلی قشنگه ها تو این دنیا شادن البشرا البشرا بشرا مستر به معنی بشارت البشرا یعنی بشارت الله لهم هم مقدم شده مفید حصفه اینا فقط بشارت به بشارت الهی حیات دنیا و فلاخرت هم در دنیا هم در آخرت اینها در دنیا و در آخرت در هر دو بگید مورد بشارت خدا مجده الهی در دنیا مال ایناست بهشون میگیم شما روسفی دید. در آخرت هم اینها بشارت به بهش دارن روسفی نه نه نه یعنی بشارت الله مجده الهی مجده الهی مشخص شد؟ اون مجده الهی اون نمره بیست خدا نمره بیست خدا لهم مال این اولیاء الله است. هم در دنیا هم در آخرت وعده نمره بیست وعده نمره بیست بشارت الهی مال ایناست در دنیا بهشون میگیم در آخرت هم بهشون میگیم بله عوض از مضافره نه عوض از مضافره نه قول کوفی نه البته میشه هل افلام عهد زهنی یعنی آن بشارت منظور بشارت درست شد لهم البشرا فل حیات دنیا و فل بعد میگه ببینید مجده خدا با مجدهای های دیگران بگید فرق داره خدا گفت گفتش گفته لذا میگه لا تبدیله لکلمات الله لا تبدیله برای لطف خدا بشارت خدا که کلمات الله آنچه خدا وعده به اینها داده هیچ تبدیلی توش وجود نداره گفته گفته یعنی آنچه خدا وعده داد وعده است کسی نمیتواند وعده الهی را بگید احساس خلف درش بکنه احساس اخلاف درش بکنه خلف وعده درش ببینه یه چیم بله نه نه استیناف بگیرید بدل هم گرفتن ولی استیناف بهتری میشه میگه لهمول بشرا آه؟ لهمول بشرا فیل حیات دنیا و فیل آخره بشارت اینجا بشارت خداست چون لا تبدیل علی کلمات الا. بعد میگه زالکه باز ببینید استینافه زالکه هو والفوز رزیم نمره هیست اینه فوز عظیم اینه موفقیت اینه بقیه موفقیتی بگید نیش بقیه هیچی به حساب بعضی ها البشرا رو گفتن بشارت لازمه ی چیه بشارت به بشارت چیه به بشارت به بهشت دیگه فوز عظیمه دیگه گفتن این البشرا یعنی الجنه نه اینکه البشرا یعنی الجنه ها. بشارت خدا عین عمله خدا بشارت بده دیگه با دیگران فرق داره انگار شما توشی درست شد لهم البشرا یعنی لهم ال حالا ما نمیخوایم این معنا ده بشارت یعنی نمره 20 خدا رضایت الهی رضایت الهی مال این هاست هم در دنیا هم در آخرت یعنی حلالشون باشه در دنیا و آخرت خدا از اینا راضیه و خدا هم هیچ وقت از حرف خودش بر نمیگرده لا تبدیل لکلمات الله هیچ تبدیلی نیست زالکه فوز زالک اسم اشاره دور آبود یعنی این که اینها بشارت داشته باشن این که اینها بگید مورد رضایت الهی باشن این هوبه و زمیر فصله فوز عظیم اینه موفقیت عظیم اینه فقیه دیگه موفقیتی بگید زالکه فوز. حالا اینجا به پیغمبر میفت ولا یهزون که این دلداریه به پیغمبرها ولا یهزون که قولهم ولا یهزون که قولهم اینجا باید بایسیم چون اون اینل ازتالالله جمیعا ها توب از سمیه الالیم کلام اینها نیست اگه اونها اینو میگفتن که پیغمبر محزون بگید نمیشد. قولشون انقد زشت بوده بگیر خدا نقلش نکرده گفته قول اینها گفته اینها سخن گفتن اینها حرفای اینها تو ناراحت نکنه حرفاشون چی بوده انک شاعرون انک مجنون انک ساحر ها درو ده نه یعنی بنابر این ولای احزن که حالا که اولیاء الله در پیشگاه الهی رو حالا که بگو فوز عظیمینه نمره 20 نمره یه که خدا بده پس بنابر این لا یهزون که قوله هم فیغم بر هرچی زحمت کشیدی حساب کتاب داره لا یهزون که قوله هم. حرف اینها در تو تأثیری بگید بعضی قدر قوله هم یعنی تکزی بهم درست شو یعنی دوز و کلکای اینها یعنی مک رو هم یعنی ازا آزارشون ولی واقعیت اینه که قول مستر اضافه شده به فاعلش مقولش هست شده یعنی لا یهزن که قول هم این نکه مجنون این نکه صاحر درد شد چرا؟, چرا؟ چرا حرف اینا تو رو اذیت نکنه؟ چون انل اِزَّتَ الله جَمْيَهِ الْعِزَّهِ الْفلام داره الْفلام جنسه چون هر گونه اززتی هر عزتی رو بخوای حساب کنی هر نمره ما بیستی هر چیز خوبی عزت هر غلبه ای فقط مال خداست جمیعاً انل عزته الله جمیعاً این لله متعلقه ثابتون موجودونه. ثابتتون ثابته تون موجودتون بعد تو اون ثابتتون موجودتون یه هی است که برمیگرده به عزت این جمیعا حال از برای اونه نگفتم حال از برای ازته چرا؟ چرا؟ به در که حال از مبتدا نمیاد مگه بنا من قول رسیبم این حال است از فائل فاعل کدوم بوده؟ بگید یه که توی ثابتتون موجودتون مستطره و لله متعلقه بوده, بوده انل ازتا ثابتتون موجودتون لله بعد جمعیان، جمیعن یعنی تمام عزت عزت اینجا جمعه چون الافلام داره الافلامه بگید جنسه یعنی اِنَّ کل عزتِن اِنَّ کل عزتِن سابتون لله جمعیان، همه عزت ها سابت هست خدا یعنی یه نفر زره عزت هر عزت ایمان خداست حوغت سمیه الالیم او یعنی خدا از سمیه الالیم سمی. خبر اول العلیم علیم خبر دوم. از سمیه الالیم است زیرا خدا سمیه او بگید الیم است قمت نباشه لا یهزن کرد ببین لا یهزن که قول هم حرف تو حرف اینا چرندایی اینا تو رو اذیت نکنه قمت نباشه دلداری میده به پیغمبر چرا؟ چون اولا افتخار افتخار خداست تو داری ثانیه خدا و عدیم به اقوال اینها و کار تو از پوستشون رو بگید هر دوتا جمله استینافی هستا آن گرفته چی شد نه؟ گفت حرف اینها تو رو آزار ندهد ناراحت نباشه از حرفشون چرا؟ یک به دلیل اینکه هرچه هست مال خداست همه قلبه و عزت مال خودداست. تو هم به خدا متصلیم. دو به دلیل اینکه خدا سمیع و بگو علیمه خدا میلاد اینا چی میگن و خدا میشنود اینا چی میگن. حساب کتابم هست پوستشونو خواهیم <تصفيق> خوب سمیع او علیم است لا یزون که قولم. این جمله هم استیناف از نسبت به قبلی شد؟ ولی قول هم معقول قولش چی شده؟ هست شده یعنی اینطوری بوده حالا که رسیدیم به اینجا که مورو از ماست میکشیم و مؤمنین به افتخار می رسند و دیگران کارشون خزن است و خوف پس بنابراین تو تو این دنیا پیان بر وزیفت رو انجام دادی غمت نباشه چرا؟ چون خدا با توست و خدا حرف اونها رو بگید میشنود و میداند آنها چه میگویند و چه می کنند این تسلیت به پیامبر گرامی اسلام و الله علیه علا و آله تا سلام